بسم الله الرحمن الرحیم آقا جم اون عرضی که دیروز تقدیم داشتیم و یه تحقق المجازات و کبرا بله نمیدونم بعضیشون دی مورد بحثش رو اون مقداری که اشاره کردیم از خود اشاره گرفتیم که تفصیل بحثش صفحه 276 کتابتون نگاه بپرموید میاد این ها رو یاد داشت می مطالعه می فرمایی. بر کتاب به زبان کتاب زود مسلط می شیم. همچون نیست که آقا مبتدی باشیم و کتاب خوندیم، فیده کتاب خوندیم. الان که به همدلله آقایان منظومه، اشارات، اصفار حوزه می فرمایی. زود بر کتاب زبان کتاب مسلط می شیم. اشار الله تعالی. به این نسبت که پیش نمیزیم، این اون مجازات کبرا که همون مقدار اشاره کردیم، تفسیر صفحه دویس و, و بعد اون عبارتم که دیروز معطل کردیم چشممون نخورده به جای کتاب، ولوقد ترق فوق القربین الى نقطت جامعه نقطه جامعه بین قرآنیت محازات و فرغانیت مزاحات را و از دست مندیم که صفحه 168 تمهیدالقباید این را یاد داست فرق مودید سدوشت چاپ اول چاپ سنگی گروز ارس کردیم و در کتاب خودمون هم صفحه 139 صفحه 139 میاد که یه هفش ده سطح به آخر اون صفحه میفرماد که وستغرزه فی حق نقطت الازما الجامعت للمراتب کله ها که این نقطه اعتدالی انسانیه جامعه بین احکام وجوب و امکانه که به بیانی که وقتش هر زده میشه نگاه میفرمایی خیلی خوب این ای جای بارت اصطاده بودیم که حق حمد را حق حمد را از زبان خودت آید جاری کنیم لا احسی سنان علی کما احسیته و علی نفسک که از زبان خودت خودت هم خود باشه او ممن از زبان ماها عهده ما خارجه یا اون کسی که ممن از کسی که آیت کبرای توست و ارزه که به زبان مبارک خودش اوتی تو جهام الکلم که از خاتمیت خود خبر میدهد و کشی جرأت نمیکنه کنه و نبایدم چون این حرفی را بزنه که اوتی تو جوامع الکل این مقام خاتمیته که اوتی تو جوامع الکل بعد این از خاتمیت خود خبر میده یه چنین زبانی که لسان اللهه و اینی که به فوق قرب نوافل است صاحب غربه فرایز است که لسان الله است او ممن بکه و انت بهی اونطور که عرض کردیم بین الغربین جامعه ها برز رسندیم که جامعه رو مقدم بدارید در حالی که چنین کس جامعه بین الغربین اینطور حال، اینها ترکیب عبارات که اهمیت داره خطبه هست دیروز آقا اون معرزتاً فی زعمه ها او تاعتن. اون رو عبارت همی جو خوندیم و دوست معنا کردیم ولی از در بیان منصوب بودنش و معنا کردنش معرزتاً کاند این حال بگیرید برای کل که کل معرزتاً کاند فیزمه ها اوتایتن همونطور که معنا کردیم بیچاره انسان چه توجه داشته باشه چه نداشته باشه در ماده فرو رفته باشه و یا الهی باشه میداند که حمد از آنتوست کمال از آنتوس جمال از آنتوس حالیشون نیست که دارن به سوی اون او می میروند همه خیر مطلق را میخوان همه سلطنت و ملک و اقتدار مطلق رو میخوام. اون مادی هم داره برای علم میمیره و چه کابش میکند برای علم و چه زحمت میکشه و چقدر علاقه داره. آن هم حب بقا دارد که چقدر بقای خودش رو میخواهد. چقدر حب بقا دارد و حب بقا داشتند دال بر این است که اصل بقایی داریم. همه از مطی و آسی به کمال می و کمال از آن اوست علم از کمال از جمال از کمال از اقتدار و سلطنت از کمال از ملک از کمال و هرچه که بله همه مردم چه مطیت چه معرزتن کاند فی زعمه ها به خود که و به خود در عین حال که تو آب است میگه آب چیه در این حال که تو نور وجود قربست و سوی کمال داره میره فی زمه ها بر حرف های میزنه این طب. بر از خوندیم، معرزتا خوندیم، که حال است برای اون کل، محامد کل چه معرض و چه متی تایه همه به تو برگشت میکند بله و همینطور اینجا جامعاً بین الغربین ممن بکه و انتبهی که برز نسندیم و وقت شریفتون رو نگیریم نه به این حد که جامعه بین الغربین است بل وقت ترقا من خاتم بل وقت ترقا فوق الغربین غرب نوافل و غرب فراوز. الان نقطت جامعه بین که این نقطه جامعه است اینجا برز رسندیم که الان نقطه جامعه بین احکام وجوب است بله بین احکام وجوب و امکان است چون نقطه جامعه است بین قرآنیت المحاظات به معناهو زمیرهو برگرده به من به معناهو به معناهو یعنی به روحانیتش به معنویتش به واقعیتش این من به معناهو به روحانیت و معنویتش قرآنیت محازاته و قرآنیت و فرقانیت را که در این کتاب فراوان داریم ولاکن در الهیات اصفار خواندیم که قرآن ولی بله مقام جمع است و فرغان مقام تفریق و تفصیل که این در مقام قرآن و جمعش مهاجات دارد محازات ولی اینکه الفاظ محازات و لفظ بعدی مزاهات و اینها مال عالم جسم و جسمانی و بعد این حرفا پیش میاد این محازی اونه ولی که لفظ نداریم لفظ نداریم باید که الفاظ را علائم و امارات بگیریم که امارت باشه، علامت باشه، حکایت باشه از واقع که فرمود من فقط فقدر الله یعنی مظهر اتم مهلا هست این معنای من رعانی فقدر الله که یعنی مظهر اتم مهلا هست که محض اسم هادی محض محض اسم حادی لذا در روایت از جناب امام هشتم علیه السلام دارد که کسی که اون جناب را خواب دیده او را خواب دیده چون شیطان به صورت اون متمثل نمیتونه بشه این محض حادیه شیطان است نمیشه این را هم ما نقل کردیم هم حضرات امه جز اینکه حدیث ما زیلی داره از جناب امام هشتم علیه السلام اون زیلش این است که فرمود همچنین شیطان به صورت ما و به صورت ما در نمیاد که اینها ما در مسیر هدایت این صدقیم و اونی حقیقی خودشون که معصومن اون اونی که شیعی حقیقی اون بزرگواران هست هم حادی هدایت است. کار شیطان زلالته، به صورت شیعیان ما هم متمثل نمیشه لذا خوابهای خوش را به صورت الله می‌بینی که فلان عالم، فلان روحانی، فلان مؤمن در عالم خواب چنین به من گفته اینطور به این صورت ولی از این مهاذات را، مزاهات را که مشابهته، میخواد بیان بفرماید بیان بفرماید من رعانی فقدر الله را در مقام قرآنیتش جمعش محاذات در مقام تفصیلش فرقانیتش مشابه حق چطور میبینید که ذات حق است و افعال حق است و شعون حق است بله آثار حق است، حقه در مقام تفصیل او را که بشکافی او را که باس کنی این حقیقت را این حضرت خاتم را میبینید که ببینید که این جناب انسان کامل این صورتش واقعیتش دوتا کتاب شده یکی صورت کتبیه او که قرآن کریم است در دست ماست یکی صورت عینیه او که کلمات داری وجود و نظام هستی وجود این هر دو صورت صورت انسان کامل من منتا اون صورت عینیشه این صورت کتبیشه که بخواهیم حقیقت انسان کامل را بنگاریم یعنی این عالم، یعنی این قرآن این حقیقتش را بنگاریم و این به کتابت پیاده کنیم، این این نفه و بین فرقانیدت مزاهات هی و مولاهو که عبد است، قهرنده عبد ولی بله عبد که با سید و مولای خودش که خدای سبحان است مزاحات داره مشابهت داره محل صفحه 322 کتاب اب آخره کتاب میشه در صفحه 322 اونجا بحث میشه بعد. همونطور که در حاشیهش نوشته قلبانش را البحث و فی ذکر ما بهی یتزه المزاحات و بینن نسخه الهیه و انسانیه نقلاً من نفحات الالهیه که یکی از کتاب های همین ماتن است خیلی در این کتاب از نفحات نقل میشه فراوان، همین متنی که مال صدر دین قونویه از کتاب های او یکی که نقل میشه این نفحات نفحات خیلی کوچیک به قدر چرس کنم یک کف دست کتابی جیبی چاپ شده بعد خطوطش به باریکی مون، اینطور، خیلی کتاب کوچیک و حروف ریز، کتاب این خوبی و با یه اون هم یه وضعی، جاداره که این کتاب احیا بشه و انشالله که آقایان من او را در دست بگیرم و خب همین در پای تصحیحش، پیاده کردنش، اشاراتش در مصفا خیلی ها میشه، در اسفار کجا ها از اون شده؟ من خیلی برای زحمت کشیدم، که دیگه نرسیدم به اون صورت را بتونم در معرض طب و نشد الله الله لالله یهدشو بعد امر امرا خیلی در این کتاب از اون نقل میکنیم و در میانی کتب عقلیه اونطور که در خاطر دارم یا یاد داشت دارم اینها بیش از همه این کتاب ها در اتحاد آقل به معقول ایشون بحث کرده در این نفه ها که لزام اون کتاب اتحاد معقول خیلی از ایشون حرف داریم و تازه همه هم نقل نکردیم خیلی عجیب چندین مورد حرفشو میزنیم و همین پیشترها در اصفار پیشتر اینقدر وقت نیست که اون از ارز کردیم این فرمایششون الیه یسعدالکل متیب والعمل و سالح و یرفع تحقیری که جناب آخون داشت و که این از نفحات صد و دین و که بار در این کتابم میاد حرف زده میشه انشاءالله و بین فرقانیت المزاهات لسیدهی و مولا وزا اینطور کسی بوده باشه که جامعه قربین باشه با بلکه ترقی کرده به فوق این مقام قربین و چون این کسی باشه که به نقطه جامعه رسیده است و ذا لمن تعين له عنایت العجليه بله دولت آن است که بیخونه خونه دلايت به کنار ای عنایت انایت عنایت سبحانه من تعين له الانايه الازليه من النون الاولى صفحه 126 کتابتونو بگید آقا زیل صفحه 640 مونده به آخرش قال معید الدین دین الجلادی رحمه الله فی شرح الفصوص لنون الذي اینجا نون را مراتب پنج گانه نون نون و ما در تفسیر نون مراتب پنجگانه گانه نون در صفحه شدوشوشه گفته میشه که نون فرمود که تا اینجا میاد که برای او خمس مراتب الاولى تعجل الاول این اول صادر نخستینه این مراتب پنجگانه نون تأیون اول از نون اولا صادر نخستین این طور. اگر وقت فرمودید حالا هر چند ما از همین سفر این بزرگواران باران را روایات و آیه کریم نون و القلم را عنوان کردیم و فرمایشات همین آقایان را جمع کردیم گوش بو کنار از این کتاب کتاب های دیگر از ایشون هم نقل کردیم حرفش رو زدیم اینها که این از نون، نون بلغلمه ما و مایست دارون به علیه جزوهی در این باره مقاله نوشته شده بعد اون مقاله همه رو در فصل پنجاه و هشتمی فسوس فارابی، شهر فسوس فارابی اونجا آوردیم از صفحه چهار سده پنج نگاه به نون و روایات در نون و فرماشات آقایان اینا همه رو اونجا یه جزبه داشتیم همه رو در اونجا دیگه آبردیم شرح تقریبا شرح همون فصل 58 و هشت برای شرح اون فصل تمام اون رساله و مقاله اونجا درج کردیم این،, این طوری شده کمک میکنه به این البان که حالا تأسیساً کاری, کاری نکردیم اما فهرست خوبیه از گوشه کنار این کتاب اون کتاب نگاه به فرمایی نمایی کنید به این اندازه تو کار میرسید. من النون الاولا و ذالک فضل الله یوتیه من یشاد. و سل من جعلته عنوان انایت کل، عزمان. حالا اینجا که دوباره میفرماد فرماید به سل من التهو بفرمایید پس اونجا و ممن بک و انتبهی یا اینجا پرمود من نون الاولا و اینها را خیلی خوش و خوب همون کتاب کوچک ناغلای تمهید القباید داشته بود و اونجا حرفی به عرض رسوندیم که جناب شعاری حلی ابن ترکه اذا ای فرموشاتشون که حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمود اول ما خلق الله العقل و انا العقل این که دنبالش فرمود و انا العقل این نه اینکه بیان مرتبه به صورت نهایی باشه یعنی ان اون آخرین مرحله اش میفرمازد که خداوند خلق عالم المثال با مثال ارز انسان کامل میفرماید که و ان المثال چنانکه امیر المومنین علیه, علیه السلام جا دارد بفرماید خلق الله عالم الاغود و انعالم الاغود و آلم المسل مثلا و, و, عالم و خلق الله نون ال اولا ساده نخستی و انال نون اولا اینها که انال اقل ال اول بیان حد توقفش نی هر مرتبه خبر میداد که من سابی من مرتبه این اینجوری بحثی بود که در تمهید القباید داشتیم انال اقلال اول بیان حد محدودش نی بیان ابراز و اظهار مراتب که انسان کامل از هر مرتبه وجود بحث بفرماید بفرماید که انه زالک المقام انه تلک المرتبه جاداره و هست به لحاظ واقعیتش، این سوئیش نزولاً که خدا رحمد کنید، زنابه شعرانی رو اسمانالله نزولاً که این از صلب عبدالله بود و از زهدان آمنه بود سلام الله علیه ما اینکه این اینطور بود که به حسب نزول لطفه بود و علاقه بود و اینی که از خود خبر میدهد به لحاظ اروجش، این سوئیش خبر میدهد این دو مقام دو مرتبه دو لحاظ حفظ بشه که اول ما فرماش شریفیشون دارم میکنم که جناب رسول الله میفرماید اول ما خلق الله نوری به لحاظ اوروجش میفرما که این آقازاده ولی بله همین نقطه نطفه بله این اروجن به جای میدسد که از خود خبر داده شدم اون و اول ما خلق الله شده نور من اروجن از این طرف شدم اون شدم اه و هاکسا و همه از مشکات من اروجا از تمام انبیا که الان هم اشاره می که همه انبیا از مشکات وجود من استضاعه کردند که به تفصیل در شرح فسوس داشتید خلص فرماسه شریفشون این بود که بحث نزولی را با بحث اروجی و سعودی را از همدیگر امتیاز بدهید این فرماسه جناب آقای شهرانی رسمان الله علیه بود حالا وصله و اینها دیگه همهشون میفرماین و سله. اما همونطوری که پر روز برز رسوندم هیچ دهنی رو به دهنه جناب امام هشتم نمیابی که در مقام صلوات و چه عجیب و چه خوش عجیب یعنی ما در تعبیل عبارتش لذت میبریم میگیم که اللهم سل علامن شرفت سلاته بشلوات علیه بله خیلی خیلی شیرینه که صلوات تو چروح است و صلاتش بدن است شرف از ذکر تو داراست نماز شب و روز شلوات تو چروح است و صلاتش بدن است حالا فرموشاتی آقایان دارند در این باره که میاده حرف 500 میشه و شل الامن که جعلته عنوان انایت کل ازما عنوان تابلو بله تابلوی عنوان انایت کل و خلت کل بله کبرا بله کل کبرا این آقا در خلیل و خلت و دوستیه به معنای دوستی خلیل با خلیل باید چگونه باشه در این کتاب بدون پایه که در فصوص در فصل ابراهیمی بحث شده نداری مصطفى اونجا بحث شده که حقیقت خلت تخلل آمیزش فوق عشقه و درخت پیچک و درخت پیچک روی درخت پیچیده بله که عشق است و عاشق است و عاشق فوق این خلطه که تخلل فرماشاتی که داره حالا به مناسبات بحث پیش میان فست ابراهیمی در فسوس و دیگه ما همینجو تذکر دادیم که به ما مزید علیه ها صفحه 169 فست ابراهیمی نگاه میفرمایی که اولش اینه که این نما خلیل الخلیل و خلیلا لتخلل هي و حش لهي جميع ما به زاد. این, این خلت را که اون چنان خلتی که تخلله فی جميع متصفت به ذات ولی ذات وجود صمدی تخللا در همه در هر مرحله در هر مشهد در هر مشهد منتها، اون عنوان شریف جناب عنوان شریف اصول کافی جناب کلینی محفوظ باشه اونها که ازا شاو در اینه ها که تخلل ازا ان علمو علمو نظر شریف شما هست که در بحث نبوت اشارات اونجا داشتیم که انبیا مقدس هستن از فکر فکر ندارن شعنشون فوق فکره چون فکر دلیل بر فقر و نداریه نداره داره مقدمات جمع جوب میکنه دنبال سغراکوبرام میره و راه داره پیدا میکنه تا به واقع برسه این بود فکر دیگه فکر اسطلاح علمی این بود آقا دیگه شانشون اجل از اینه این برای ما بیچاره هاست که اینجا اینجور فکر بکنیم جام بکنیم اینها و فوق حدث هم ازا شاوان علمو علمو احمیقد ازا شاو نظر بیای تخلله در عبا ازا شاوان علیمون دو به خداوند درجات دیگرمون مرحوم آقای الهی رسبان الله علی سید محمد حسن الهی خبیه مرحوم آقای تبا تبای الله علی بله این فرمایش بطابق فرمایش آقایان ما پیوسته به همه هستیم گسیخته که نیستیم ما جدولی از بحر وجودیم همه پیوسته هستیم به همه هر ذره پیوسته هست به همه یکی از مباحث خوشی که در این کتاب داریم و این است که هیچ کلمه وجودی هیچ ذره تمام جهت از خدای سبحان نازل نشده تمام جهت که بگیم این یه پیوسته به اون طرف نیست مستقلن این تفریضی بگه که حالیش نیست این معنا نداره الهی و هر ذره میگوید که به یدهی ملکوتو کلشه انا بود دوکه انا بود دوکه لازمو یا موسا حالا الان به خطاب به حضرت موسای کلیم هست انا بود دوکه لازم ولی این خطاب برای هر ذره هست انا بود دوکر لازم نمیتونی از من بریده بشه قائمه به منی چکنی نمیتونی از من بریده بشه یکی از بحث های توحیدی در پیش داریم در همین کتاب که هیچ موجودی تمام جهت به طور استقلال از مبدع ناظر شده باشه که و اون طوری که تفیزی بی توجه میگوید چیزی راق نداره پیبسته این به دریای بیکران هستی منتها نتونستیم روی حدودمون روی های نتونستیم که ما که پیوسته به این بحر بیکرانیم جدول لایروبی نشد که به همه بپیوندیم به خلاف اون بزرگواران که تخلل در همه جا پیدا میکنند به تعبیل شلیف ملخوم آقای تبا تبایی الله علیه میفرموند در هر مقام آرفه به الله در هر مقام که هست هم قبل را میخوند هم بعد را میخوند و در اون مرتبه که هست اون مرتبه شرح مافوق متن ما اینطوری این دیگه در هر مرتبه هست هم قبل را میخوند چنانچه میبینی که اونیا کممت انسانهای وسایت فیض میخوند هم از هر منطقه داشت شاوان علیمون یه بعد حالا بنده الان تفصیلش یادم نید اما دیدم که روی مبنای پرمایش خیلی علمی و خوش و خوبه در یکی از این نکات 1001 نکته آوردم روایت را خیلی خوب، حالا تفصیلش یادم نیست اما اجمالا که شطور جناب رسول الله گم شده بعد فرمود که به شطور منو پیدا کنیم. اینا به راف دادن این بار با گشتن پیدا نکردند. و یکی از اینها هم یه قوری زده گفتش که ایشون مدعیه که از آسمان خبر داره اینجا نمیدونی که شطورش کجا گیر کرده و کجا سشوینها برگشتن آمدن گفتن نیافتی و حالا اندک ارتفاعاتی حالا شاعر فرمود برابید فلونجا افسار شطور به زیشه درختی بند شده اونجا گیر کرده ایستاده و رفتن دیدن درسته هستشون گرفتن آورد اینطور یه خورده خر و فرما شد این حالا باید داریم خلاصش شر کرده اینطور اما ضا علمو علمو این مشیت را بیاوریم بقیه فوق فکرن فکر مقدم همین همینقدر همین قط ضا شوع اینطور خیل و شله الان من جعلته عنوان عاییت کل عضما و خلت کل کبرا و آتیته این نیت, جمع... ای این نیت جمعیت اسمای کل اولا آتائیتهو این, این نیت جمعیت اسمای این کار میرسه این نیت اسما کار میرسه کسی داشته باشه ویلا مفاهم اسمانو که ما خیلی خوب میدونیم تازه ندونیم من عرب باز میکنیم که رحمان یا نیچه و رحم یا نیچه و رازق یعنی چه و, یعنی و بالاخرین دیگه سرخ و هم خوندیم، این کلمات را بلدیم اگه لغتی از این اسمال را ندونستیم، پیدا می‌کنیم. این معرفت مفهومیه ارنی کیف توهی الموتاب میخواد مزه اسم، اون انیت اسم محیی را بچشد میخواد خودش مهی بشه، این, این اسم مهی در اون پیاده بشه و خودشون نشون بده این نیت اش مهمه است میدونیم قابض یعنی میدونیم باشیت یعنی چی ما هم قابض و باشیت هستیم در حد خیلی محدود به باشمون جمع کنیم کتابمون جمع کنیم و چیزی باش کنیم پهن کنیم چه بو همین بود و قبض و بشت ما مثلا یه خود بالاتر اما یک کسی قابض و باشیت باشه در ماده کائنات اون کسی مثلا جناب رسول الله و اون خطبه قاسعه نحجالبلاغ راجبون درخت اینها. اون تشرف جناب امیر علیه السلام به باب خیبر و هر پای دیگر این, این تصرف در ماده کائنات بعد در کتاب میاد از ما ابن فناری و میفرماد که عباس این جمع باشه هر بیصرف ها نگوید من انسان کامل خوبی خب خوب اینا هشداری ها خوبیه هر،, هر کسی نگه که من انسان کاملم انسان کامل علامتی داره اون علامتش میفرماید احیا و اماته اش احیا و اماته اش اینطوری به این به این که مظهر اسم شریف مهیی و ممیت میشه اصلا عینیت این اسم را حقیقت این اح... این نیت واقعیت این اسم را دارم میشه نه مفهومش رو مفهومش رو که برایش کیه، ره می داد زاربی ازیب خوندی متوجه میشه که این, این نیت اسمای کل حسن. و آتیتهو و نیت جمعیت اسمای کل اولا شاهد آمانه حقیقت قتل و من شلد علی من و من من من نهی و من من من نهی و به امدادهی یمکنو وصول و نقطت المشار علی ها بلورا سد که العلما ها ورستتون ان بیا که بیاد بیاد انسان به فرمایش ارحوم آقای تباتبایی طبع فرماششون در پیرامون همین حرف این بود که ما را به مقام خودشون خواستن دعوت کردند فرمودن ما را ببینید و به سوی ما بیایید تعالوا بالا بیایید پس ما را شایستگی اون هست که به سویشون ارتقا پیدا کنیم. حالا تا هممت چه باشه؟ یه وقتی میبینی یه آیتیست که خود رسول الله در باره اوی که انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا الا انک نکه لسته به <بِنَبِيجِن> این رسید به اون نقطه اون تا لسته این وارسه این وارث کامله جنابالی به هممت بنده به هممت تا هممت چه کنه رسیدن به وراثت به اون نقطه نقطه جامعه حرفیه سمت نبوت حرفی دیگر دیگه لا نبیگه بعدی سمت نبوت را نبوت تشریعی نه اونها نبوت انبایی و مقامی که وقف آم به خداست هرکی راه بیافته بسم الله نبوبت انبای و مقامی نه نوبت تشریح نوبت دیگه به حضرت خاتم صلی الله علیه وسلم تمام شده هر ولیگی به هر مقام که برسد باید رعیت او باشه و باید که در زیر لوای حمد او باشه و امکان ندارد که به از او ببارد راه نداره اینطور حالا هر چی در ولایتش بالا آمده نبوت تشریعی به اون جناب ختم شد اما اصطلاح آقایون نبوت مقامی نبوت انبائی این همه نبوت تعریفی این الفاظ زحمت ایجاد نکنه گاهی میفرماند نبوت تعریفی گاهی میفرمایند نبوت انبایی، نبوت عام اخباری اینجور تعبیرات دارن اینها همه یعنی که راه بیفتید به همت خودت به هر مرتبه از مقام خاتم رسیدی معارج قرآن را سیر کردی تو توبالکه با حسن و معاب بله ولو اینکه نبوت تشریعی وقت خاصی اون جنابه مال اون جنابه این تو این نحوه. و ممکن است که در نبوت انبایی چیز هم به شما بدن خیلی عبارات خوش، شیرین، مطالب خوب در ریاضت های شرعیتون خواب خوش، بیداری خوش به شما حرفای خوبم جناب رسول الله رو خواب ببینید جناب رسول الله فرمود، بله حدیثی برای شما نقل کرده شما مقداری دارید بگیر قال رسول الله منتها به قول مرحوم و که فرمود در مقام نقل بلا اینکه اقوانشه باید که ناقل تذکر بدهد که بله اینطوری حدیث که استلاحاً میگن اینها را میگویند که حدیث برزخی اینها که میگن حدیث برزخی یعنی این آقای سالک در مسیر خود خواب و بیداریش گرفته نه حدیث معصور متعارفی که بله از کافی باشه بهار باشه و اینجوری فقط این تذکر رو بدهد که وقتی موجبه گمراهی نشه اشتباه نشه اینها این تو صاحب امانته حقیقی حقیقت الخلافه و من منهی من و به امدادهی یمکلو وصول نقطه المشار الی ها بل ورائشه این جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم المحمود شر روحه و علنو و عینوه و علما این وجود خارجیش علم صورت علمیش در ذات حق سبحانه او و علمه الخلیفته علا کلل خلیغه بر همه یا فریده ها الخلیفته علا کل خلیغه چون همه بحث را در فسوس داشتیم که همه از مشکات وجود او که لولاک لما خلق الافلاق تو اصل وجود آمدی کز نخست دگر هرچه باشد همه فرع توست این تو به قول نظامی دو سر خط حلقی هستی به حقیقت به هم تو پیوستی همه از همه از حق سبحانه هم نازل شدن اما در این دایره که آمدن پایین در نیم دایره دوم اوروجی همچون نیستش که رسیده باشند باز دایره تمام کرده باشند ولی این در اصلا یک درجه دو درجه چند درجه اینها ها برسند کسی که اون نیم دایره دوم رو دوباره تمام کند که دو سر خط حلقی هستی پیوسته بشه متصل بشه دو سر خط حلقی هستی به حقیقت به هم تو پیوستی سیر کامل دوران کامل دوره کامل بربگه در حدود بایش دادن اینها مگر کسانی که باز به فراست تامه مثل حضرت وصی علیه السلام توانش به اون مقام برسه الا کل الخلیقه من هی جو و حال که وش و مراتبت مقامشه که او او او نهایت مرتبه بشه حالا مقداری پیش می رویم باز همینطور طور پرماش میفرمان اینها همه باشتر میشه و حکمه خیلی از این جاحت حیث ذاتش، حالش، مرتبهش، حکمش اینها بر این خلیفه هست بر کل خلیقه و الان آلهی آلهش، آلهش، چه تینیگه، چه دینیگه بل آله که اینها که آله او و بل تین گل، بل اینها که آله بچاره فش آلش آل هستند و کسانی که آل دینی او هستند حالا به اصطلاح ما آل اونها که در مرتبه عالی قرار گرفتن که معصومینن اون اونها بزرگواران توسعه بدهید از سلمان و منا اهل البیت توسعه بدهید حدیث شریف کل تقی و نقی و عالی کل تقیگن و نقیگن عالی، و این عالی دینیه اینطور در شرح بعضی از آقایان علمها بیشتر یادم نیست کجا چی جور، اما اینقدر پلوسش در ذهنم هست که راجب به شرح حال بزرگواری می‌خوندم که متاسمان در خاطر ندارم کی بود و کجا و بعضی از آقایان رو دیدم حرف به میان آوردن که پرمود من هیچ وقت صدقه را تصرف نمیکنم صدقه نمیخورم شاید نیستم. نیستم، احکام سیادت بر خود جاري نمیکنم اما صدقه هم نمیخورم ملا بود عالم بود عالمه روحانی تبانا بود صدقه را بر خودم حرام میدونم که من آل دینی پیغمبرم ولو اینکه احکام سیادتم را بر خودم جاری نمیکنم که بگم از اون طرف مثلا حالا این آل سیدم باشم نه ولیکن صدقه رو تصرف نمیکنم که آل دینی رسول الله هستم علا آل تینیه و دینیه و ورسته الحالیه والمقامیه والعلمیه والعملیه تا همت چه بوده باشه این است که ما به او عروج کنیم فرزند او باشیم آل او باشیم تا همت چه کنه سلاطن توجازی به ها انا احسانه احسان را فوق اون چه که در فصل فس لغمانی فسوس الحکم شرح فسوس قیسری داشتیم احسان حالا این کتاب هم این کتاب در احسان میاد اما به هزون دیگه حرف زده نمیشه در فصل لغمانی شرح فسوس قیسری انجا صفیه 429 رجوع بفرمایید پس لغمانی احسان را به هز دیگه این آقایون بحث مودن که خوب بحث کرد اوائل این کتاب میان تو جازی به ها انا احسانه و تو کافی و مکافات از پاداشش بدهی که همزه را قلب میکنید. و تو کافی بها ما خصنا و ارساله ارشالهو به لحاظ خشنا و امنا به رحمتین من رحیمی که خاصه شفره خاص الهیه و رحم من و رحمانت رحمت رحیمی و رحمت رحمانی رحمت رحیمی شفره خاص الهیه رحمت رحمانی شفره عامشه رحمت رحمانی اینکه همه آفرید و برایشون غذاب و لباسی لبازم زندهی برای همه علصصویه اینها را آفرین رحمت رحیمی مربوطه به خواسته بعد از این به افتادن افتادنه به قول رومی خدا رحمت کنید جناب آقای الهی قمشه ای رو بله. می که رومی که گفت آن یکی جودش گدا آارت پدید وان دگر بخشد گدایان را مزید آن یکی جودش گدا آارت پدید این رحمت رحمانی که این گدایان رافریده هم اینجود این رحمت وان دگر بخشد گدایان را مزید اوچ میده رووج میده می بالا میارره مقامات میده این رحمت رحیمیه این دومی کسب و کار و زحمت و ونها میخواهدرش و بحث و یه خونه دل خوردن که بله خدا من روزی منو شما کردن هم الله رب العالمین خوب خونه هست و این طوریه. اون اولی رحمت آمه برای این خانه یخما چه دشمن چه دوست سفره آمه است آدم و شیطان گل و خار هر دو بر سر این صفر مهمانه اون و بعدو خیلی خوب شو. و بعدو ف تنفر تشذب آراء علماء رسوم به تذبذب تزبزب احواء ابناء العلوم الى حد لا یرجا تطابق و اترائقهم ولت توافق بین سوابقهم و لواهقهم كشف کشف حقائق العقیده و حل مزالق شریعت العتیده لام لا جواب فئن تنفر تنفر اسم الا ما خبرش که لام در خبر ان آورده فئن تنفره لما هر آینه اونیش که به با مرا بادار کرد که بله این کتاب رو شار کنم و چطور دلالا مقدم میگیره برای کارش اینطور خیلی خوب حالا تنفر سب... سب... بایین چون خودشون قاضی بودن آقای ابن فناری شاره فقیه قاضی بود اصلا در کرسی عذابت نشسته بود قاضی بود حالا می فرمادیم قال و قیل و اقوال و آراب و چه ها و چی جور این ها, ها ما رو بادار کرد که ما بیاییم که تو اون آقا استادشون گفت الان من وجدنا که ارز کردیم وجدنا یعنی تح... دین تحقیق تقلید نیست اینطور. زحمت کشیدیم و یافتیم این از تو لیسه الله به این صورت از این تنفر از تشذب آراء علمای رسوم تشذب یعنی تفرق پراکندگی ولی قال و چقدر حرفا پیش آوردن. حرفا زدن و راه خدا سرات مستقیم یک راهه و چقدر حرف پیش آبردن یه وقتی آدم میخواد که روی تأثب حرف بزنه یه وقت روی واقعیت چیکار داره به تأثب حقیقتی عرض میکنم نگاه میفرمایی شما با من همراهی کتابی این همه قال که پیش آمده بر اثر دوری از باب ولایته از ابتدامون رود نیل رحمت الهی رو منحرف کردن اقره ورغه دیگه بله از ابتدا منحرف کردن از باب ولایت دور شدن و این همه تشذب علمای رسوم و اینها پیش آمده بچه ها مرحوم خاجه در نقد المحسل بلا میفرماد که این حرف برای یه شعر اختل نسرانی او را عنوان کردند که حالا او را دستابیز قرار دادن ماشاللهی که قرآن حادث یا قدیم این چی رو میفرمون حادث یا قدیمه این الفاظ رو میفرمایید صورت کتبی قرآن رو اینو جناب خاتم آورده باذن الله الفاظش وحی است البته چی قدیمه قرآن رو حضرت خاتم آورده معنایش حقیقتش قدیم است برمیگردد به علم و به ذات و عین زا خب البته قدیمه این همه دار زدن و این همه شمشیر قاجه شمشیر زدن گردن زدن گردن زدن، تبعید کردن، بلاها سر مردم در و چهها ها به این قرآن حادث یا قدیمه توتیه کردن شرح حال بخاری، صاحب جامعه بخاری به شون که به منبر رفت صحبت می کرد توطعه کردن، توانی کردن و در اصنای گفتارش سوال کردن که ایوه العالم قرآن حادث یا قدیم قرآن حادث قرآن یعنی این صورت کتبیهش و تاریخ ش حالشی که را چیز کردن سبارونش کردن و دیگران اون را میانی جلسه در بردن نجاتش دادن فراری شده همین سای جامعهشون اون جامعه بخاری باری بخاری معلو جا سای جامعه و الب چهها کردند چه گردن ها زدن و چه بلاها ها سر مردم در آوردن و هر وقتی بهانه میگرن ظاهری حدیث رو میگرن اشخاص دنبال میکردن برای و آزار کردن به مسلمان بچه ها بچه ها به ابواب جوامع روایی رو لگاه می بینید که این ابواب این عنوان هر بابی عنوان که پیدا شده این عنوان رای غالقی پیش آوردن بعد آمد از معصوم سؤال کردن این طور میفهمد می این صورت به این نهوست این طوره اینجوره جوره، این از باب ولایت دور شدن و این مشکلات پیش آبردن، این فخر رازی من حالا کنم؟ مرحوم شیخ بهایی میفرماد در اون تفسیر سوره همدش کسی در عبارات فخر کتاب های فخر رازی تعمل کند و نگاه کند، غور کند، میبیند ایشون مایل به تشیع است. حرف جناب شیخ بهایی. یک قصیده داره قصیده فارسی نونیه نیشون خیلی هم سنگین یک قصیده فارسی داره در متح حضرت امام هشتم علیه السلام و چقدر قصیده سنگین یکی از علمای پیشین این قصیده رو شهر کرده قصیده یکی هم بیت فارسی نونیه سنگین یکی از علمای ملقب نمیدونم به افلاتون از علمای پیشین بلیشون از نخجوانی ها علمای این را کرده نسخه از این رو ما داریم از همین قصیده فخر رازی با این نسخه شهر رو خیلی هم دیر خیلی هم تمام تمام این قبیات فارسیش همه هر بیتش مثل یک معما خیلی سنگین خیلی عجیب عبارات پیاده کرده رسیده نونیگر در مت امام هشتون در تفسیر قرآنش مفاتیهش اونجامی در تفسیر سوره بسم الله گفت که بنی اومیه دست به دست هم دادن که آثار علی رو محو کنم حتی اسم علی نبود تو کار دست به دست هم دادن که آثار علی رو محف, علی دست دست علی رو محف و چقدر شباهه خیلی آقا روشنه که میبینید این به فرمایشون تشذب آرای علوم علمای رسوم از ناحیه دوری باب ولایت پیش آمده و گرفتاری ها باره مردم پیش آمده.